و السلام على المرسلين والحمد رضي الله رب العالمين السلام عليك يوهن نبي رحمت الله وبركاته السلام على العلمة الحادن المهندين السلام على جميع انبیاء الله و رسوله و ملابکته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصادحی السلام على عمير علي بن أمير المؤمنين السلام على صديرة الشهيدة السلام على الحسن بالحسن سيدة شبابح للجنة أجمال السلام على علي بن الحسن زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر من النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق <سلام> على موسى على موسى على على على السلام على سيدنا إبراهيم الكاظم، السلام على إبن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجباه، السلام على علي بن محمد النهضي، السلام على الحسن <محمد> بن علي النجدي العسكري، السلام على عبد الحسن بن مالك. الله الله الله اللهم كن لي وليا وكفيا من صلواتك عليه يا ذا في هذه السار وفي كل ساعة سديدا وحافظا وواردا وناصر ودليلا وعينا خطا تسقنه السن توعا وتمتعه فيها اللهم عجل قلوب يک از فرج و جعلنا من اصحاب اله ادامه بحث هدایت قرآن و کمال انسان در دو جلسه گذشته با الهام از ندای پیغمبر اسلام که شب جمعه قد نفعش شد بود با شب ولادت پیامبر و مصطفی الگوبردار مطرح کردیم این نکته رو بنده اشاره کردم که بالاترین درجه کمال انسان برای کامل انسان از دید قرآن نه رازی پیغمبر اسلام از دید قرآن کریم ما بالاتر از پیغمبر اسلام نداریم اول شخصیتی عالم امکان یعنی در عالم انبیاء وجود دارد در بین مخلوقات پروردگار هیچ مخلوقی اولا از انسان بالاتر نیست و در بین انسان ها هیچ انسانی از پیغمبر اسلام بالاتر نیست اینا بحث شده به شده دلیل داره نه اینکه چون ما مسلمانیم بر مبنای تعصب می‌بینیم نکیجی اثبات رو در غالب یک اظهار از آن ارزم کنن بحث مفصلی جد. خب حالا که از دید بار کریم بالاترین و کاملترین انسان پیامبر اسلام است بالاترین درجه کمالیت که برای پیغمبر اسلام در آیاتی که در رابطه با معراجه مطرح شده خب در معراجی چه جمعه وجود دارد که این جنبه به با عنوان بالاترین درجه یک کمال بالاترین انسان ندره شده و آیا رفتیم به ما پیدا میکنه یا از باب گیرم که باب تو بود پادل از خلده که درد حاصل و به ما چه رفتی داریم نه کاملا به ما رفتیم ایمنی ایمنبر اونگوی ما هستم اصوه ما هستم ایشان مبعوث شدند که ما را هم در این مسیر به حرکت بیارند. لذا اهل فن در رابطه با معراج این تعبیر بسیار بسیار جالب تربیتی با مطرح کردند و تبیر بسیار صحیح و بجاییاست میگن یه معراج مطلق داریم یه معراج نسبی معراجمطلق مال پیغمبر اسلام ما حالتش هم نمیزنیم اون مقام خاص اون شخصیت و ازمای آدم وجوده اما معراج نسبی چیه هر کس به هر نسبتی که از پیغمبر تبعیت کرده و همون نسبت میتونه از این عروج برخوردار بشه چه کسی در این آدم و اندازه امیر از پیغمبر تبعیت کرد هیچ کس؟ لذا فر آیه قرآن امیر المؤمنین نفس پیغمبر معرفی شده یا نه؟ خب ما در روایاتمون داریم در نعراج هم امیر با پیغمبر بودن پس اون معراج مطلق که ما پیغمبره برای امیر که در تبعیت به مقام نفس پیغمبر رسیده امیر هم دارای این مقام بودند اجازه به دید من یک روایت رو تیمونم و تبرکم اول بخونم بعد ادامه بحث با هم در این جلو در تفسیر نور و سرالی جلد پنج سطحه 149 زیر همین آیاتی که در راوزی با نعراج پیغمبر رسول نرم گفته شده سوال رسول الله پیغمبر کرمود است لما اور جبی الاسمان وقتی که مرا به با عالم بالا عروج دادن من شما رو گرفتم عالم بالا فکر نکنید با مکانیش اون مقام خاصی که پیغم به رفتار رو براتون بحث میکنم لما ار ال الى سما دنوتو من ربی عزوجل حتی کان بینی و بینهو غا و قوسین او ادنا من به اون مقام قربی نائل شدم که کان بینی و بین حوکا و او عدنا که فاصله من با ذاتنزش الهی که توجه دارید فاصله مکانی نیست فاصله زمانی نیست چون آدم آدم ماده نیست خدا مکان نداره خدا زمان نداره اون مقام قرب و با عالم بالا و شفاتی و قربی حاصله نبود مگر به اندازه غاوشنگ و ادنا خب فقال علی ذات اقدس الهی در این مقام قرب که دیگه اونجا بعد از اون مقامی که راه نداره فقال علی ذات اقدس الهی به من فرمود که این مفصول دیگه اینجا بلا است که ابراهیم هم اونجا راه نداره یا محمد صلی الله علیه و آله من صاحب منال حالافه چه کسی رو چه کسانی رو از مطلبات دوست میداری و خدا تو میدونه این سوال جواب علی روشن شدن ماهاست قلت یارا علیان گفتم خدایا علی را قال الفطر یا يا علامه اسمعت رو نبرم به جهت هي صلوات فرشود بشين توجه گام يا رسول الله فلسفت تو ان يساري فاذا اليد دويثار عليه السلام و نگاه كردم کنار داشتم دیدم علی نبی صلی الله علیه خب، این تو روایات من یه نمونه خوندم بگرنه روایات زیاد جزئیاتی هم دارن و اگه وارد اون روایات بشم کنترل از دستم در میره نمیتونم دیگه آیه بحثونم رو تشتدار کنم دیگه قابش میگم چون آدم اونجا دیگه به وجد میاد اون وجد در میتسم کار بخواهم همون بساید رجوعی دید من به همین یه روایت فیرم ولی خدای من شاهداده این که خواستم نزاد کنم ولی رایی به این روایات که من دیرسم وجدم تبدیل گریه میشه ساعتها گریه میگیره من از این جهد که این چه مقام نیست از اون طرف او چه اما از طرف دیگر او چه مضمونیت که ما هنوز تو این آلم در بین مسلمین حالا قیده مسلمین که هیچ؟ در بین مسلمین بخواه اثبات کنیم علی حق بود این دیگه حالا بذارید در جردم به بحث خب پس یه معراج مطلق داریم یه معراج نیست معراد مطرف مال شخص نبی اکرمه و هر کس به هر نسبتی که دنبال روح پیغمبر شد لقد کانده کن فی رسول الله عصوتن حسنه این عصبه حسنه رو سرمشق قرار داد این سرمشق حرکت کن و همون نسبت از این معراد برکرداره اگر امیر به گونه ای با پیغمبر تبعیت داشته که شده نفس رسول الله لذا در معراجم پیغمبر خدا بشهی نگاه کن ببین هم کنار درست درست با خب حالا این معراج چیه که ماها الله با عنوان پیانبر باید تابعیت کنیم این به این معراج به این مقداری که میتونیم برسیم دو نکته در هم آیه اول سوره استرال که براتون خوندم هم آیات سوره نجم که براتون خوندم دو نقطه وجود داره که اوج مقام پیامبر را در مراج نشون میده. اون دو نقطه چیه؟ مقام شهود عین یقینی ترکیب میکنم مقام شهود عین وقتی پر روز سبحان الگزی اصراق و هفت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى که اونجا که چه بشید نوریه نشون بده بش مقام رقیت آیات الهی رو به پیغمبر اسلام نشون بده پیغمبر به مقام رؤیت و شهود آیات الهی و در سوره نجم وقتی با هم فرمود پیغمبر این مطالب رو دید. فرمود ما که زبد فعاد و ما آیه که آیه که هماره یازده بود در سوره نرش فعال پیغمبر دل پیغمبر شهود کرد چون روحیت دلی با چشم دل دیگه با چشم سر که نیست ما یه چشم دل داریم یه چشم سر داریم چشم سر می بیند مشاهده می کند اون اموری را که در محدوده آدم ماده و حواس بینایی می گنجد چشم دل می بیند حواقی را که مربوط به آدم معنا و فل و آدم وجود است هر هرچه چشم سر ما بیناتر باشه مشاهده آدم مادهش بیشتره هرچه چشم دل ما بیشتر باز باشه مشاهده آدم معنا مشاهدهش بیشتر میشه. حالا این مشاهده غلب پیغمبر که دل پیغمبر که ما کذبر فعاد و ما رها این چی بوده دو نفته در آیه رو کنید یکی فرمود و لب از رعاه و اخرا این در شدرت منطقه این اینجا دیونه میشه چقدر بتونه تحمل کنه بحث کنید. این اندست شدرت منطقه چی؟ خوب نایت بکنید این شاید کمی سنگینه یک کمی گمسه در شایدم شاید بعضی به من بگن آقا چرا بارد این بحثا میشید من از از ها جوابش بدم در دخل مقدر بکنم خدا رحمت کنه استاد ما رو مصاد و تحریف بودن بارهایی به دوستان گفتن آقا مسائل اعتقادی تحبودیه یا تحریریه بله تحریریش این بحشی در آن راجب مقام پیغمبر و تعادی پیغمبر مطرحه اعتقادی شد و اعتقادیه که این آیات قرآن و اعتقادیه تو آیات قرآن در مسائل اعتقادی شیفه تحقیق داریم یا نداریم رشیفه تدبر داریم یا نداریم خود شخصه چیزه هم کمک کنیم بشه به کمک هم دیش بریم حالا این که میفرماید این روغیت اندشت به درکل منتخاب و بعدش چی میفرماید؟ چی بود لبد رآ تو آیات آیه 18 لبد رآ من آیات رب بهل کبرا نه چنها آیات را ببیند آیات کبرا را ببیند خدا پیغمبر رو به میراج برد لنوریه بود بهش نشون بده یعنی مقام شهود پیغمبر رو برای پیغمبر مشخص خونه که همه چیز برای رو روشن روشنه خب که همه چیز برای پیغمبر قرار رو روشن باشه خب همه ی حبائه آیه دیگه اما آیه کبرا را در نور یهون آیاتنا نه تنها آیاتنا آیات کبرا را یعنی یکی بالا ترین چیزی که در این آدم امکان شهودش هست از اینجا ما میبرمیم یک مقام شهود اینو یبینیش دو شهود آیات کبرایی که در عالم مافوق سکر ترمونده هاست یه چه مقامیه؟ تا نشبیشو برنرمون کنیم حضرت کمی درست فرمیم اون هم ها وقتی سخن از عوالم هستی رو مطرح میکنن میگن چهار مرحله حد دوستان تو باقیده دارن جمع میشن به نام نامی بارم آرد اصلا من که دیگه قابل جان هستم. خب شما یاد بفرمایید چون واقعا بحث بسیار جدی و حساس سنگینم است. خود من از توی بحثا کمی از حال عادی خارج میشم. کمک میکنم که بتونیم با حالا چقدر شب بتونیم این بحث رو جمع کنیم تا بریم جلو عرب وقتی سخن از اوالن حسدی رو مطرح میکنن و حکمان از مرحله بالا بخواییم اول مرحله حسدی که دیجه هیچی راجبش نمیتونی بگیم ذات پردش الهی در با ذات پردش الهی چی نمیتونیم بگیم یعنی چی فصل راه نداری فرد میتونیم بگیم هست ما بگیم نیخ نوزه بگم نیخ که منو هست اما چی هست هیچی دیدی نمیتون این همونیش که پیغمبر راجبه این مقام چی فرمود ما عرفناک هم حتی معرفته. این مرحله ما عرفناک اونجا که اقام پروری زست از پشه لاغرهی چه و وقتی پیامبر میبرماد ما عرب نشناد نمی کنیم بشناسیم اون چناهی که سزاواره لذا تعبیری که همه عرفا و حکما به کپان به کار بردن میگن در مقام ذات عقدس الهی نه عقده هیچ حکیمی راه میبرد نه دل هیچ عارفی نه عارفی با دل میتونه شهود رو بکنه نه حکیمی با عقل میتونه بفهمه اونجا مقام هیچ نمیدانمه چیزی حرف نمیزنیم فقط میگیم هست دا قدس الهی هست دیگه هیچ راه نداریم از این میایم پایین وقتی میایم پایین میگیم عالم لاهوت که مربوط به اله عالم لاهود، آلم ذات خدا می سون راج به ذاتی چیه بگیم؟ ولی اگه به با لاهود میتونیم حرف بزنیم حالا این چیه؟ میخوام عرض کنم که عرب ها استدلال و حکمان عرب ها شهود کردن حکمان مثل حکمت متعالیه ملاسدرائی اثبات کرده این را که مقام دنا و تدلال و مقام از نام مربوط به آدم اینو این مقامش برسیم ولی چطور سر از عالم لاحوت در آورده یعنی چی؟ خیلی بحث داریم آن تو به هم پیدا کردم بحثا را را هم می داریم انشاءالا می چقدر میتونیم جلو بریم دقت را بر پس یک مقام ذات از دست اللهی هیچی هیچ که سعت نزد بین اولین مرحله در عالم هستی عالم لاهوت، عالم لاهوت چیه عالم اسما و صفات نه عالم ذات ذات اقدس ادله همانیش که در آیات قرآنی بهش میگن الله و با زمیر و اشاره به هویت ای که اطلاار هستی در اونجا متبره زابه چیزی نمیشه گفت اما این ذات براش اصمای مشخص میشه سفات مشخص میشه اصلا میگیم خالق شما به محضی که گفتید خالق خالق در رابطه با ذاته یا خود ذات رابطه با ذات خود ذات یعنی ذاتی که نیافرینه پس معلوم اون ذاتی که یه فاعلیتی انجام می دهد و لازمه این فائلیت خالقیتی وجود مخلوقم هم هست لذا اون این اسم خالق، اسم رازق، اسم مالک، اسم موهی اسم مومید، اسم مرسل و حاکزان اینا را در مرحله اول اول اول رتبی، اول اول مقامی، اول زمانی و مکانی در مرحله اول رتبی و در مرحله اول مقامی خدا در ذات خودش یه تجلی میکند برای خودش به این معنی یعنی در عالم علم خدا تعین عالم علم است نه تعین ذات دقیق کنی که ازون گونم درد اینه بسیاری از مردم حتی در سنده ها این تعین عالم علم را به معنی تعین علمی با تعین در ذات اشتباه گرفتن میگن عرفا و حکما برای خدا قائل به تعیون که شرکه با حال علمی است. به نه تعیون ذاتی ذاتی چرا نداره در ذات غیر هیچ چی نیست پس حق نمیشونی بزنید اما تعین علمی یعنی خدا میداند چه میخواهد من شما رو بیاقی رد نه پس این علم میشه چی؟ میشه یه سفتی در خدا خدا علم داره در این بره ای زمانه به من بیافرین شما رو بیافرین آسمان بیافرین زمین بیافرینه این مخلوقات خلق کنی ای اینا که در عالم علم خداست میشه تجلی ذاتی خدا برای ذات خودش این مرحله ایه که تجلی ذات برای ذاته از اون جهت دقت بفرمایید از اون جهت پس صفات و یکیست میشه مقام احدیت از اون جهت که ما این مخلوقات بالعقره دوئیگی با خالق پیدا میکنن میشه مقام وحدگیه عرفا میگن مقام تابه غا غو شینه و سین دوئیگت رو میرسونه مقام وحدگیت فعلا درسته باشید تا درس یعنی از این دوعیت برو بالاتر از دوییت بری بالاتر به که نمیرسید به تعین علمی مقام اهدیته یعنی اون جایی که جبرائیل نمیتونست بیاد کجا بود از مراحل پایینتر که الان میخوام بگم عبور کرد به کجا رسید به عآلم کجا کجای عالم لاهوت قابحوسین به با عالم واهدیت یعنی به عالم عیان ثابته یعنی به عالم علم خدا نسبت به و آلم و اندازه شاهد میارن دوستانی که با قرآن کار دارن دلگت کنید یکمی خیلی بخزریفه دلیلی که خدافند به سرشتها فرمود شما نمیتونید خلیفه باشید آدم میتونه خلیفه باشه چی بود؟ هم به اونید ها یعنی راه پیدا کردن با آدم اسماح. هر هرچه درجه معرفت راه پیدا کردنه با عالم اسما بیشتر بشه مقام خلافتیه؟ مقام خلافت پیغمبر که خلیفت الله که همون مقام را علی بن ابی طالب در مقام خلیفت اللهی بانوار با نفس واحدهیه با پیغمبر پیدا کرده چه مقامیه؟ مقام و نه او ادنا از واحدیت به احدیت اینو داشته کار دارم این را پس اول ذات هیچی نمیدید دیگه عالم الوهیت که میشه واحدیت و احدیت اولین تجلی خارج از ذات حضرت هم که در این آلم جلگری میکنند میشه عالم جبرون عالم جبرون چه آلمیست؟ آلم مخلوقات خدا که مجرد تامن مجرد تامن خوب در وقت میدونم می برچه که میخست کنند دست رو. اما یه نذاری تحمل می کنم فکر می‌کنم برای تو بفرستم الله اکبر جبروت عالم جبروت آلم مجردات تامه. چون هرچی چی درجه موجود پای در روشه مادیت، مادیت مادی های ظلمانی آدم ماده درش بیشتره. اونی که تو مقام رتبه وجودی بعد از مقام لاهود میخواد در این عالم جلوه پیدا کنه تو درجه اول میشه مجرد تامه این مجرد تام رو به تعبیر دینی گاهی میگن عقل نه این عقلی که من شماست این جلوه ی ای از اونه. گاهی میگن نور ازا روایت داره اول ما خلق الله هر عقل. چندین جایی لفظ میگن فلانی اول ما خلقش هيكرده یعنی یه جربه ای از اون جربه ای اول ما آخر نه خودش اشکار کرده اول و ما خلق الله العقل دیگه روایت هایی که تو نیست دو چقدر روایت داریم پیغمبر رو فرمودن اول و ما خلق الله نوری اول چی میگه خدا آفرین نور من بود ما گفت شما رو مایی فرنده کمپانی اسفاد ها و اورافاو و هزدسین و ادبا و همه و همه وقتی به شعر محبب بگیرمی که ای نور تو نخستین و این مستر حد چه هست مشتر ای فاتحه کتاب هستی خدا یه کتاب تشریعی داره که آخرینش قرآنه فاتحه کتاب قرآن که باز میکنید اولی سوری همده یه کتاب تکیبینی داره هستی داره فاتحه کتاب هستی صادق نخستینه ای فاطحه یک کتاب هستی پسیز توی آفت دست رو نه این میشه آلم جبرود عطل مجرد تامه نه ماده است نه مقدار داره نه تحصیل های ماندیده هیچی و آدم از آلم جبرود یه درجه که میاد پایین موجودات بعدی میشه آلم ملکوت آدم ملکوت که پایی تر از عالم جبروته چه تفاوتی با آدم ملکوت داره؟ ماده نداره ولی مقدار داره که به تعبیر ارفانی میگن خیال خیال منفصل خیال منفصل جلوی از ملکوت من و خیال منفصل ملکوت آدم جبروت حالا عرض میکنن خیال منفصل خب رو فرماید تا روشن رو بشه. الان این لیوانی که اینجا ملاکین می‌فرمایید، این لیوان شما می‌گید این شکل داره، این وزنو داره، این حجمو داره، این رنگو داره، این مقدارم توش آبه. خب این به لیوانی که اینجا الان وجود داره، میشی که شیء مادیه. ولی صورتی از این لیوان که تو ذهن من و شما میاد، خیال متصور من شماست. متصور من شماست. شما تو قوه مخیلی خودمون اینو وردی اونی که تو ذهن ماست مقدار داره یا نداره مقدار ذهنی چون مردی دیوان دیوانه دیگه که اگر فلسفه اشتقان اینجا باشه بگم دیوانش هم درباره اشتقان بود شما در مبنای صورتی که تو ذهنتون میتونه جواب بدید یا نمیتونی. پس مقدار ذهنی داره اما ماده که نداره این الان هم مقدار داره هم ماده پس اونایی که تو صورت ماست ماده نیست اما یه اقتضای نسبت به عالم ماده این میگن ملک این چه میگن چون در من متفصل به من نمیشه خیال متفصل عالم ملکوت خیال منفصل خودش برای خودش حقیقتیه ولی بین عالم جبروت و عالم ماده است. از بالا ذات و الهی که بحث نکنیم. بیایم عالم لاهوت. بیایم پایینتر عالم جبروت، بیایم پایینتر عالم ملکوت. از عالم ملکوت بیایم پایینتر، پایینترین درجه عالم ماده است. عالم ملکه، این عالم خاکیه. در وجود من و شما بدن من و شما از عالم ماده است نفس من و شما از عالم ملکوت و ملکوتم حقیقت عقلی و روحی که در بدن تبدیل به نفس شده از عالم عقله حالا میگن پیامبر وقتی در معراج بالا رفت وقتی سبحان اللهی اصرا به عبدهی لیلن من المسجد العرام مسجد العرام آلمی چی بود؟ ماده اما یه نویته ای این سکوی پرواز انسان به سوی ملکوت از ملکوت به جبروت از جبروت حتی به لاهوت به این منعه اینکه خدا بشیم یعنی قرب سفاتی با واحدیت و عدیت نوازات اشتباه نشه این سیر سکوی پروازش همین آدم ملکه ولی در ملک هر مکانی نه هر جور خوراکی نه هر جور ای نه در بین مکان مکانها کعبه به عنوان یک مکان خاص معبد الهی الهیش یعنی میخوای اروش پیدا کنی عالم ماده تو پاک بکردار همونطوری که کعبه پاک هست کعبه حرام هست به هر نسبتی که تو مکان ناجور رفتی از معراج باز میبونی فکر پرواز نداری به هر نسبتی که غذای ناجور وارد مهدر شد اینجا ناجور به معنی حرام ناپاکه به هر نسبتی که تعلقات عالم مادت رو گرفت، به همان نسبت امکر نزان صبحان هستی اصلا و عدهی لگر منال مسجد الحرام من الان مسجد حقسا از این قبلهی که الان قبله همه است اونی که قبلا قبله بوده یا اونی که قبلا قبله این که میخواد بعد قبله بشه اونی که بعد این میخواد قبله بشه هر کدوم در نظر بگیه این به تاریخ سال معراج پیغمبر و محراج های مختلف از توی عالم ماده بخایی ها رو بگیر توی عالم ماده اون اموری که از مادیت مبرم به اونها بچست اشرا خود اشرا سهی دادن در شب رو میگن لیلا یه تحکیبی هم به کار رفته شبانه این کناره شبانه یه نکته ظریف قرآنیش اینه داریم هدایت قرآن میگیریم خیلی اهل تظاهر نموشیم احمد رختشیدن نباشیم. چرا گفتم صدبه میدید جوری میگید که این دستاد این دست نفرمه لا تب در صدقات کن بلمنه اون و شیطان خیلی زرنگا کلی زفتی می کشید کار خیر میکنید یه تا زرور مثالی ما دارید تو زبان فارسی گاوه هفتمنشیر یا نومنشیر هر درست آقا شیر می دشید می یه نمیده که باشه خدمت میکنید یک زبان طرق همه رو به بار حساب دارید این ها جدید این صاحبی هاست یک جمعه آقا زنی که به شوهرش فرش بده آنه هرچی می خواهد روزه مصطبی شوهر که روزنش ظلم میکنه هر حقیقی میخواد نماز شب بخونه بابا جون سکوی پروازتون غلطه نماز شب برای که ما رو تو این آدم ببرده سکوی, سکوی پرواز انسانی که تو دنیای درونش منیت برای خودش قرار بده صافی بکنه آقا بعضی ها یه زرنگی ها یه عجیبی دارن که رو برای این من. من دیدم اینا رو بعضیا. میخواد کار خود پیش ببره تمام با دشتون دادن به دیگران کار پیش بره کشیم هم که فرمانشی نمیبره کسی با او درمی اخته برچه آقا میگه چی تو میخوای من باید انجام بدم کن من احساس بساس تک میکنم من احساس میکنم یه راهی باید دارم. اینا جنگی کردن تو حریم خدایی شما میدنم تو سرشان اوج گذاشتن نه تنها سکوی پرواز براش نیست یه هایی به پا بسته شده که نمیداره اوج بگیره ادا سبحانندگی اشرفا در اون پنهانی ها در اون تاریکی ها در اون عدم تظاهرها در اون عدم به روح ها در اون کاری های خاصی که انسان باشد و خدا خدا باشد و انسان منیت ها رو کنار بذاره این هوای نفس ها رو از خودش بتونه دور کنه این حالا اوج میگیره خب خود اوج کجا میره می گفت صدرت المنتقه ها رسید خب صدرت المنتقه ها گفت من دیگه نمی‌تونم بالا زرگی هم یعنی چی منتقه یعنی چی به چی میخواد بگه و یه نقطهی به شیابه شیابه شیابه شیابه زرگید اینجا نقطه شده دکت کنید من که خدا میدونه وقتی این روایت در تحلیل مطلب مثلا اینقدر برایم لذت بخش بود که اگر می‌شدم که مبالغه می چی بدونی چه خبره تو عالم معنا سفر کنید پیغمبر وقتی به صدرت المنتقه رسید از اونجا به بد روایتشون بکنم قایرم بکنم جفرائیم کنید دیگه نمیتونم بیا پیغمبر باید تنها برد پیغمبر تنها برد مشرف شده خداوند انشاءالله حدیث مراج چارشنبه ها داره اون بحث میکنم اون مرحود به بحث چارشنبه ها ولی این نشته ای که مربوطه به این بحثه میدن حدیث نعراج یعنی سیروسدی که راه اروج میگه، از خدرت المنتحا به بعد گفتگوی خداس با پیغمبر خب در حدیث نعراج خدا پیغمبرو با چی خطاب میکنه؟ یا احمد احمد پیغمبر از بچیگی که مادر براشون اسم رو خب همه من میدونی اون اسمی که وقتی برده میشه سلوات هم میفرستی اما در قرآن کریم سوره ست آیه شش میگه در انجیل گفته شده که اسم پیغمبر همین اسمی که پیغمبر در نقراج خطاب کردن من آیه رو براتون بخونم سوره مبارکه ص آیه شماره شش رو درد بفرمایید افکنم که این باد. در انجی بیامون کنیم یه دفتر. و ازغال گاله. ای سب یا اسرائیل. عنی رسول الله ععل و مصد دقد ما به میل ای یا من توورات و مبشرند به رسول یتی مبی اسم او احمقل در تی از یک رای و قومین ز آ شو سوی آیا رو تو و بهار جل 16 سقیه 96 داره که سعدا بعض الیهود رسول الله یه اده یهودی ها اومدن فیغمبر گفتن لما سمیتا محمدن و احمدن و بشیرن و نزیر رسول الله حقیقت سلامه صدی علا محمد قاید محمد, محمد رجی بلادات بلی اسرائیلی معروفه اشکالات بنی اسرائیلی معروف اومدن گفتن اه ما گاهی میگی اسم من اسم اولی گاهی میگی اسم گلام بردیم گاهی میگی من بشیرم گاهی میگی من نزیرم تو قرآن همین ها گفته شده فقال هم پیغمبر فرمودن اما اسم اول که میمه میداد فعلیم تل محمودانی. محمودان خود دقیق کنید اشیده نقاید و اما ها سلامات رو قرآن برسیدیم که وحکم یاد اما محمد قدس الله سره تعنی فل ارزه محمودون و اما احمد صلی الله علیه و سلم تعنی سماعه احمدون من هو فل ارض عجیب این روایت‌ها رو ادامهش می‌کنم <تصفيق> هم کلمه محمد هم کلمه احمد هم کلمه محمود از ریشه چیه حمد حمد سقوط محمود سقوط شده میگه محمد اثناء ارضیه من در زمین ستودگی مقام این عالم را محمد میگن ستودگی عالم بالا را احمد میگن چون احمد افضل التزیه و التزیه زبان فارسی بگم شما یه وقت میگید خوب یه وقت میگید خوبتر یه وقت میگید خوبترین محمود البته این عربیه فارسی من میارم غلطه ولی عمدن میگم محمود محمودتر, محمودتر. محمودترین محمودی که به اقتضای عالم مازدست بشینگن محمد محمودی که به اقتضای آلم سماس بشینگن احمد چون اون هم خیلی بالاتر از این به سلاسو تو دیگه این آدمه و لذا حضرت در ادامه شم فرمودن و ام بشیر و رومن رو من اطا الله الجمه و ام من نذیر رو من اصال الله بالنار من بشیر میگن چون به میدن که اگه اطاعت کنی کجا میدین منو رو میگن پس این اسم حاکی از صفت منه من محمدم محمود در عرضم من احمدم یعنی محمودتر از او در عالم سما هم حالا محمود تر او در عالم سما چیه؟ بعد از صدرت المنتهى یعنی از اونجا داره میره بالا حالا کتاب میشه یا احمد یا احمد یا احمد یعنی حالتی که هم خیلی بیشتر از اون مقام دنیایی شد خب صدر یعنی درخت درخت صدر توی جنوب خودستانم هست درختی که چه 50 سالن میگن عمر میکنه یا بیشتر خیلی هم خوبه به صراحت به ببخشید چند سال طول عمر میکنه درخت خیلی کهنسالی هم هست اثر هم داره بانیشم از اونها صدری که استفاده میکنن اما اینجا صدره درخت منطقه و آخر یا یعنی سدره درخت اول تو تعبیر بگم و تو روایت خب یا وقت آلم را آلم ماده را در بیان روایات و حکمت به درخت درختش کردند که این شاخ برگه های مختلفی داره همانطور که یه درخت تنه داره یه درخت شاخه داره یه درخت صابه داره یه درخت درخ برگ داره یه درخت گل داره یه درخت نیوه داره آدمم این آدم هم یک حالت گوناگون وجودی داره مولویم هم با توجه به این وحث میگه این جهان همچون درخت است کرام ما بروتون میوه های نیم خام لذا عالم یعنی درخت هستی عالم ماده منظور آلم مولک زن ملکوت عالم ملکوت اون ملکوت هم یه درجه‌ای از مقدارش هست صدرت المنتهی یعنی بالاترین مرتبه درخت وجود ملکی و ملکوتی اونجا را پیغمبر را چند احمد بودنش خطاب شد حالا روایت رو ببینید یعنی شما هر چه در عالم ماده هستید منکن صفات خوبی داشته باشید صفات خوب آلم ماده است ولی باید از ماده تر میکشید ولی بالاتر بالاتر تو آلم مثال متصل و منتصل شیرکورید میشه آدم مبکون میتونید بالاتر برید بری تو آلم جبروت ورود پیغمبر با آدم جبروت با خفاق یا وحمد شد ولی از جبروت این بالاتر میده آبا غوسیل و ابنا حالا روایت رو دقت کنید بعد آیه رو به مرزاری میکرس کن خفت داریشی را شعرم که یه حالتون تغییر پیدا کنه برگیر را میدادم جلسه برسون برسی کمی شنگینه به این خطاب قدر و بعد این به خط یک امام کازم علیه السلام نورا سن علیه جده پنگ ما اسراب النبی وقتی که پیانبر را خداوند سیر داد و کانم من ربهی که قاب قوسین او ادنا به این مقام بالا قوسین او ادنا رسان رفع له هجاب من حجبه هایی که برای خدا بود اینا برای پیغمبر کنار زده شد این یک ای داشته باشید تا با اون بحث سیر تکاملی در عالم ملکوت و دو در کتاب احتجاج طبرسی خطبه امام سجاد در مسجد شام یاتونه این رو بحثشو کردید امام سجاد وقتی خواسته خودشونو معرفی کنند به مردم شام میدونن ما کی هستیم علبنشی علبن علبن فعود علبن ملعلا پس طعلا حجاد در سرت المنتهى فکان من ربه غابت الوسی یزید و مسجد دمشق این خیلال که ما آدم های عادی هستیم ما از مخانه عادییم که ك... من فرزنده کسی که الان بانه هم و رو کرد فشته الان بالترش هم خواست کجا هم از ملکوت و جبروت از جبروت به بالتر از جبروت به کجا بود سجازش تک رفتن منتها صدره منتها هم تجاوز کرد خب بالاتر از فضلت و منتها چی شد؟ فکانم رفعی نسبت به مقام و اون فردرگگاری که این سی رو پیدا میکرد غاب غوثت او ادنا به فاسقه دوتا غوث یا نه نزدیکتر از اون چی در این قرآن مامو سجاده نور نورا سغرین جده سؤال رسول،, رسول الله یا سؤال رسول الله از خدا سؤال شد. حال رأیت ای طرف المعراج؟ آیا خدا رو در شب معراج دیدی قال را ایتو نهرا و را ایتو ورا عن نهره حجابن و را ایتو ورا الحجاب نورن ثم لم عرفی جزاک ان شاء یه وقتی توضیح میدم این نهری بالاتر از نهر حجاب بود بالاتر از حجاب نور بود این بالاتر از این دیگه. نه این حجاب شما توی مناجات شعبانیه حتی تخره را خود جوان نور که افسار و بلو بون شهوی درسه خب. این رو داشته باشید تا بعد این نهر یعنی چی بگم فقط این مقدار رو داشته باشید در نور و سغرین جلت هنگ سفیه سر از امام باغیر علیه السلام سلم منتحادهی الى صدرت المنتحا تخل و فعنه جبرائیل فکی پیغمبر به صدرت المنتحا رسید که از اونجا میخواست بره بالاتر تر صدرت رو خوش به سر بذاره پیغمبر جبراهی بیگه اونجا خوش سر اسمون فقال رسول الله فیها در موزه تخل و در این همچه جایگاهی داری من پنهانی جانی دو قدم رو جلو امامکه والله لقد بلغت مبلغا لم یبلغ و من خلق الله قبلک اینجا به بالا حدی قبل دست کنه و او مرحبه راه بیدا کنه فرعیت من نور ربی من از اون مرحبه که بارا رفتم نور ربم رو دیدم و حال بینی و بینهو از و بین من و فقط صبحه بود راویانو ببینید که قدم های قسم زیرکی بودن امامو باقیر بگید وقتی پیغمبر اینو می فرمودن راوی گفت قلط و من صبحم اونی چی بود؟ که بین شما و خداتون دنافت ادالله این که قاسبه کوتاهی که دیگه, دیگه چیز دیده به اون مقام نمیرسه اون صبحه چیه جهل فدا صداتون به شما چی بود؟ اینجا دخل کنید در وجهه الالعرض سرو اندختم کنیم و اومع به وجهه الالعرض و اومع به یدهی الالشماء حالتو ببینید؟ نما به هنجه دیدید؟ داره و اومع به وجهه الالعرض و اومع به یدهی الالشماء و هوا یهول جلال و ربی جلال و ربی جلال و ربی خلاصه مرات اون مقام جلال یعنی اونجا که یکسی نمتجا پیده اونی که معرف ناکه تا معرفت ده این هم داشته باشیم. یه روایت دیگه همه یه خسته نشدی و یه خلابات داره کتاب ایلال و شرایع جد یک صفحه ست از امام کازم علیه صلات و سلامه راویه بباریت یونس ابن عبدالر بحمانه دوستانی که با حدیث و حدیث چناسی کار کردن میدونن به بعضی راویان اینا از اون سحبای جندا رو از امام سوال بکنن اماما بیره جواب میدن همین سعال اگر بعضی از امام میپرسیدن امام جواب میدن یونس عبد از اوناث یونس بن عبدالرحمن میگه قلت لعبد حسن موسی بن جعفر علیه السلام با آقای امام کاظم علیه السلام بحث کردم یا ای علت رجع باه به چی داشت خدا پیغاماتش اون آدم بالا خروج داد و منها الی قدرت منتها که از جمله این عروض به سفر نسل بود و منها اله حجب نور نشون می و نوایات دیدن تو پیغمبر فرموده بود اینها زمان ما کازم علیه السلام میدونی که هجاب نور رو هم در نبردیده شونی منها من جمله این عروضی که پیغمبر فیدای کرده است به حجب و نور و, و او و ناجاه و خناف آنجا خدا رو مخاطب کرد و پیغمبر خدا رو سدار درد و هم, سخن گفتن. والله هم لا سخ وذا ناجه انا والله لا يوسف بمكان فوارن یعنی ما خدا که مکان نداره وسته به مکان نمیشه پس این چیه فوارن الله لا يوسف و ولا يجري عليه زمان امام کاظم بودم خدا وسع به مکان نمیشه زمان بر او جریان نداره خدا زمان زمانمند نیست ولکنه از زبجد اراده امير الشر رفديني مدائكته و شكران از سماوات هي و يكرمهم به مشاهده و يوری. يوری خدا اولا میخواست موجودات آسمانی را یعنی اینایی که تو عالم ملکوتن تو عالم بالان اینا اولا مشرف بشن به زیارت پیغمبر یعنی دوگیر دو باشه که پیغمبر اینا سریع زده مقام بشر تا کجا میده همونطوری که ملاعیف باید به انسان سجده کنن این انسان یه سریع با اونا بزنه اونا باید افتخار کنن یک اهل دیلی اگه به دیدن شما بیاد چقدر خوشحال میشین اونا ملاعیف باید افتخار کنن که پیغمبر سریع به اونها زده تو پرانتزی که بگم درم ضراره نمیده ت بیاناوی او م مال <سؤال> سلیمان ایمان است بعد تو از هنی اون دوزیست چرا نیست و بالا دیگه پیونبر وقتی که نخراجژ میرفت در آدم مل قبل از جو بود اون جایی که هنوز جاری راه داره چون جالبین که دی ابراگاه نداست دی یه گوشه ای ماقش خیلی رآه پرسید از الیبری که پیغمبر اوقات آمد، الیبری از تاریخ برای من شماست. پرسید از الیبری که چه اون گوشه ساختمان خیلی زیاده چه خبره؟ پیغمبر میگه بیا رسول الله خودتو ببین. پیغمبر جلو دیدن علی ابن ابی روی کرسی نشسته، می ملائکه میجور دارن مثلا مثل پروانه ای دور شمعش دور از دیگونی میپلکن. علی عبدل من اومده اینجا که جواب داد از وقتی که خداوند نور علی را در قالب مادی به عنوان انسان در کره ارض قرار داد ملائکه سما از فرآور علی بناد در آمده خدا مجسمه از نور علی در ملکوت آفریده ملائکه به عشق علی با این مد تعبیر من با این مجسمه نوری علی حال می حالا اینو داشته باشید؟ اینجا میده یک خداوند خاص موجودات آدم بر ترک ملافق و آلم ملکوتن اونا بخوان از چیل رسلا شرافت برخوردار بشن اما تنهایی نیست و یوریهو من اجافه و ازمتیهی ما یخبرویهی بعد حبوتهی و لیشه زادت الاما یعود و حضمشب به هم سبحان باه و هم ما جزه و زمین بشیر شنی بده ده نوریهو آیات کبرارا همه اون حقائق آلم برسن هم تیغنبر به چون وقتی بریدهش بتونه برای مردم حتی شهود و رقیت خودش رو هم بیان کن شاعرانی که در عالم حکمت و ارتان یه مقدار کار کردن این بحث چجوری که دیگه بسند بس نمی کاراست و می یکی از این شعران میده در اون عوضه نور حد دلیل است چه جای گفتگوی جبرعیل است یعنی اونجا دیگه آلم هجاب نوری هم رفته جبراهیل پاییم در از عالم حجوم نوریدی جبراهیل وازم نیستنی گفته بود در آن موضع که نور حد دلیل است چه جای گفته بود جبراهیل است ترشته چه دارد قرب درگاه نگنجد در مقام دیم الله یعنی سفیقان دارید. که پرمود دیم الله مقام در وزی جا داره حالات به وقت داره حال داره و حالات هم داره یعنی من یک شرائطی با من و خدا هستی هیچ که در اون که اشاره به است. فرشته گرچه دارد قرب درگاه نگنجد در مقام دیمه الله چون نور او ملک را پر بسوزد را جمعه پابوس پر بسوزد یعنی مگه میشه بیراحتی فهمید که چیه مصنوی گفتر چهارون عویات سه هزاره تا سه شا احمد در بشايد بک, شاید، بک شاید اون پر جدید اینجا اسم ازلاتو با اسم بود چون از عالم صدر به بعد دیگه از محمد بودن بالاتر رفت احمد صلی الله علیه و حالا, آن... حالا از اونجا به من اون بال پرواز از ملشوز قبلتر منتها جبروت از جبروت به لاهود اربوش شایدون تر جلیل تا ابد بیهوش ماند از چون گذشت احمد زی صدره مرسدش و از مقام جبرهیل و از حدش گفت او را هند بخر اندر پیام گفت رو رو من حریفتونهیم باز گفت او را ای تر من با اوجه خود نرفتستم هنوز من تازه اگه ملکون توی جبرون تو مدم من جبرون تو مهم با حضر برم گفت بیرون زین حد ای خوش فر من گرزنم پری به سودت فر من تو دفتر شارم عبیات 1456-1457 نه برسید این بگونه هفت اورنگ جامی جلد دو سفیل 233 بیترده جمال دوست دیدی به خدا پیغمبر درده درد در میکنه بیترده جمال دوست دیدی و یه مختیه بسیار ظریفیه چرا جلال نگفت؟ جمال گفت تو عالم اصما و صفت عالم واهدیت و اهدیت را پیدا کرد ولی تو آدم جلال همونی که سلاسه مرحات بود جلال الان فیش راه نداره بذار اینو فهمیدیم جامده رو گفته پرده جمال دوست دیدی و از پرده به پردگی رسیدی گشتی همه دیده پاید آفرد تمام وجود شد شد چوت، مشاهده حقیقت گشتی همه دیده پای آفرد در پرتو نور اون شدی غرب شب ز زبان بی زبانی بشمی کلام جابدانی این زبان نبود ولی کلام جابدانی رو گوشه دلت دریافت به چیز حوشی زوق و سهت همون حدیث از با او این همه این بر چی شد یعنی انسان همیشم این کافی باشه چون بستنگینه باید ترتش کافم ولی آنه نورتی رو میخوام بشترسیم برسیم آیت بکنیم پس بالاترین مقامی که انسان میتونه پیدا کنه ما تو این عالمی نیشه ناسود ولی عالم بالاتر داریم ملکوت. یا بالا بالاتر داریم جبروت یا الان بالاتر داریم لاهوت بالاتر دیگه خب ما تو ناسوتیم فعلیت ناسوتی داریم ولی مقام ملکوتی و مقام جبروتی و مقام لاهوتی در ما چیه؟ بلغوبست میشه بلفعلی کرد میشه نهراجه یک به فعلش مثل امیر میشه در کنار تو اعراض یک به نسبیش میشه سلمان فارسی میشه منا یه نسبیش هم دیگه شادا که هر یک از ماها میگارم به درجاتی سر از آدم ملکوت و ملک در بیاریم بذارید یه. خسره شدی؟ خسره شدید یه جلزه ملکوتی و جنباریتی رو قبل از اسلام از میکردیم به تو های قبلی براتون بگم همه تون خوندید شدارم ولی با این بحثی که از هم دقت کنید سوره مبارکه یوسف آیه 94-95 ما هستا در تقیق ایرو کاروان از زندان از این این کاروان مسافرتی بچه یوسف فسلت از مصر جدا شد یعقوب کجا بود کنعان. اونا کجا بودن مصر فاصله جغرافیایی رو تو نفسه در نظر بیارید کنعان تقریبا جز سوریه خیلی سهره سینا مصر فاصله در نظر بگیرید فلما ما فسلت قال ایرو قالا که گفت عنیله عج دوروری هیوس فر اوا تو فندونی فن یعنی منو اثره نمیکن نمی که دیوونه شده هند سپات عقبی رو میگم تو ف نزون یه نظرره عبی ید که مش پیدا کرده ی عروش رو خوردان لوز اگه من ایری متهم نمی کنید من دارم بوی یوسف رو استشام میکنم این چه قدرتی؟ حضرت از البته این تا فرانتز بگم آقایون در کنید خانم مخصوصا دقت کنید یعقوب باید فهمون و سبر در اون مساحب داشته باشه تا بیری مقام برسه قبل از فهمون این مقام را لذا اگر مثل میگه یوسف و چاه در اون چا فاصله کوتاه متوجه نشد ولی بوی پیراهنو بعد از اون که گفت خدایا یکی درد و یکی درمان پسنده یکی وصل و یکی هجران پسنده من از درما و درد و وصل و هجران پسنده اون چرا جانان پسنده یه شب شعر شخص سالهای تر براتون خوندم حضرت, بیتابین. حضرت یعبو بیتاوی میکرد جبراری نازل شد تو خدا میگه یعبو خرابی نیست بیتاوی کنی امتحانه سر رو یعنی سفر رو پیشه در شبی در عالم خواب دید که یوسف صبح پیشش تو عالم خواب بیداری بیدار. کرد تا بیدار شد جای ناظر چکف نشد و لذای یعنی چی؟ یعنی آقا تو مسیر قربحه ولن نبلغان نکن به شیئن من الخوف والجوع و نقص من الاموال و سمراد و بشر صابرین آقا گاهی مالی تو ازت میگیرن گاهی سلامتی تو ازت میگیرن گاهی مقام تو ازت میگیرن انقدر کشمامونی که با کوچکترین مشتر جانم به فدایت زینب کبراز سلام الله علیه تو مجلس ابن زیادم میگه و ما رعی تو جمیل ها ما تو راهو بل من بیتامیل روی میکنیم تو چه کردن من که ناسفاسی نمی کنم. ما با این که کشمامانی بودن ها به جایی نمیرسیم تو بودت های معروفه میگن یک آبت و مشهوری از یا آبازش از دور شنیده بودن یکی گفت داریم دبینیم که ایش کنیم اومد در خوناش خانو داشت از خانمش پرسی که اینجا منظل بللاری قبلله که اومدم رو کا بر یک مدیکی شروع کرد فخواشی کردن پر سر شوهرش وقیی ب دورکن. این بندی خدا چه خود این سرش اینجوری. اومد بیاد از در خونش قشمان شما بر که به برمید که اینجوری میگه و خودش معلومه کیه؟ اومد بین راهیه بندی خدایی پ رو رو ژیزمونداری کرده یک جد ها افی هم دستش عنوان شب داره این پلنگو هدایت میکنه کیسومارو بیان و ک سی و من فلانی و اه تو اونی الا میخواستش درس بده بله و چطور زنه مو نتونستی این پلنگو اهل کردیم گف اونو تحمل کردم <تصفيق> گاهی ممکنه واقعا انسان باید در مقابل حالا جسالت به خانمانه نمیخوایم بکنم آنه لالله هستن درم نخوایم نزام بکنم لالله دستم توحیله به خانمانه بود که سیله دستنده چون این در... خواهی مقابل شما معمینه یعنی گاهی انسان در مقابل همسر، گاهی در مقابل فرزند، گاهی در مقابل همشانیه گاهی دنیا داره امتحان روابط اگر انسان تام میخوام ایموء کنم با چی با یه کمی درآمد من کم میشه با خدا وارد میکنم یه بیماری تو خانواده من میاد با خدا وارد میکنم تحمل یه مقدار مشکلات مسیر ندارم یه نفر به من میگه بالا چشمت ابرومت و دو ماه تحمل میکنم با اینا بیچاره نمیریش از این عبارات حکیم هیدجی این مرد حضور موند این مرد حضور موند شایدش ازش پرسید استاد یک با درس خوندی درست دادی لحمت کشیدی حاصل چیه مرنج مرنجو مرنج حالا ببینید این چه مقامیه میگه که ولما قصدت لئی رو غاله ابو لأجلو لأجلو يوسف بعدش. هم امی لعجدو لعجدو ریح یوسف لولا انتو فن ندون قایه بعدیش غالو اترافی هاشون اون بشهات اونجا بودن حالا بردیگن برای ها من غالوم تالله اینکل فی زلال کل قدیم <any Wald countries> تو باز همین حقای برای عدیمی رو یه زمین یعنی برای مردم قابله حتی اترافی هاشون خانم اترافی هاشون قابل نمون نمون نمونی چی لذا میگن بعضی از ای حرفا را برای هر کسی هر کراو اسراو رهک آموختند مرغ کردند و دهانش دوختن یه زمانی مثل آشی خسندی نخدکی معمول میشه دهانشو باز کنه یه زمانی در اثر عدم لیاقت امثال من تو همی تهران ممکنه دهتا باشن ولی دهانتو را بستند یه کسی متوجه نشه لذا باید ما به این مقام اولیای الهی توجه کنیم که میشه از ناسوت به ملکوت رفت میشه از ملکوت به جبروت رفت میشه از جبروت به لاهود رفت با چی؟ گونه که یک اصرا اینکر تظاهر نوشته باشیم نزاریم افراد به ما چه کارایی کردیم بذاریم نخفی باشه خدا فقط شاهد باشه و بس مگه خدا نمیبینه این اسرار و اینو بگیریم دوم من المسجد الحرام إلى المسجد العقصى با پاکی ها، با عبادت ها، با رفتن تو عماكن خاص با بودن تو عالمی که یه مدار انسانو، و چون معبد و مسجد و مسجد الحرام و مسجد کنایه از جاهایی که ما رو یه مداری از حال حوای مردیت جدا میکنه یه شب جمعه مخواهی دوره همشون یه مداری نمیشه بعضی فرض شه رو تایید کنیم ما عروسی داریم ما مهمونی داریم ما فرنجا داریم همش این حرفا کلی یه مقدار بذاریم برای جاهایی که ما رو از این مادیت بکنه انقدرم شیطان عواملی درست میکنه که جلوی کارا رو بگیره معروف که حدیثم میگن هست لکن شیطان آفت و دلتزمه یاد ذحبیاته آفت هاست هر چیزی داره برای یادگیری و معرفت آفت هاست ای میخواد چه رو پای ما میشه مسیر بریم اگر میخوایم اوج بگیریم باید آوچ بگیریم حالا این پیامون که به این عروج رسیده اون جمیسی یعنی حدی خدا افرام کرده به نوری هم در نبر دیده ولی چه راضی است او بگم چه رازی است وقتی آیه نازر شد پیغمبر رو به اسف نکنید نکنی عرب جاهلی میمد گفت یا اسم عزت رو نقبه پیغمبر یا رسول دا بگید یا خاتم من نبیهی بگید مقامی قائل باشید این آیه که شد حضرت زهران سلامون علیه ها همیشه به پیغمبر عرض میکرد یا عبتا تبیر ما بابا جی. این آیه که نازد شد بعدش پیغمبر وارد به حضرت زهران شد تا وارد شد سلام سلامو سلام داد سلام یا رسول الله احسنتش ما ی پیغمبر تش فرمود شنشه قولی یا ابا تو بگو بابا و انه احد و خدا به این راجی تره دل منم یه خوشمون تره دل پیغمبرتی به خدا چیزی پیش نیست حالا چی از فاطمه بگه بابا پیغمبر درست خوش میشه چون وقتی بگینه دخت همینست زهرا داره چه غذب و غذب خدا رضای و رضایه خدا یعنی پاتنه مذهب خداست برای پیغمبر اما یه دا پاتنه پیغ... ترمود اولتا نمیدونم پیغمبر خوشخان شد یا ناده پیغمبر هم بودن کجا وقتی شیل شد دیوار گرام کرده غالت پاتنه عذال سوتری یا يا عباتایا یا ما ما دام نجیب امر بعد که من به خاطر جانون